یک روز بعد از ماه فوریه، بعد از آنکه فصل بازی بیسبال کامانچی شروع شده بود چیز ثابت و تازه توی اتوبوس رئیس نظر مرا جلب کرد. بالای آینه اتوبوس که در بالای شیشه جلو جا داشت عکس کوچک قاب شده یک دختر با کلاه و لباس فارغ و تحصیلی دانشگاه دیده میشد. به نظرم آمد که عکس یک دختر با حال و هوای سراسر مردانه اتوبوس سر جنگ دارد. و من روک و راست از رئیس پرسیدم که عکس کیست؟ در ابتدا تفر رفت اما دست آخر گفت که عکس یک دختر است پرسیدم اسمش چیست او با تمجمش گفت مریادسون پرسیدم که ستاره سینمایی چیزی است گفت که نه کالج می میرفته و بعد که مدتی فکر کرد افزود که کالج ولزلی خیلی گران قیمت است پرسیدم پس عکسش توی این اتوبوس چیکار کند؟ و او اندکی شانه بالا انداخت که به نظرم آمد انگار میخواست بگوید، عکس را بفهمی نفهمی بارش کردند. توی دو هفته بعد، عکس که حالا خواه از سر تصادف، خواه به زور بار رئیس شده بود، توی اتوبوس جا خوش کرد. و همراه با جعبه دستمال کاغذی بیبی روت و کاغذ های جلد شیرینی دور ریخته نشد. به هر حال ما کامانچیا به آن عادت کردیم. و رفته رفته حال کیلومتر شمار را پیدا کرد که برای هیچ کس گیرایی ندارد اما یک روز که حدود یک کیلومتری از زمین بیسبال گذشته بودیم و راهی پارک بودیم رئیس حوالی خانه های شماری 51 تا 59 خیابان پنجم اتوبوس را کنار جدول برد و نگه داشت نزدیک به 20 نفری مسافر ایرادگیر توضیح خواستند اما رئیس صدایش در نیامد به جای آن حالت داستانگویی به خودش گرفت و بی موقع بنا کرد فصل تازه‌ای از مرد خندان را تعریف کند اما هنوز چند جمله بیشتر نگفته بود که دستی به در اتوبوس خورد سیم‌های حساب رئیس آن روز حسابی قاطی بود با شتاب از روی صندلی بالا پرید دسته‌ی در را پیش کشید و دختری با کت پوست فک از اتوبوس بالا آمد تا آنجا که به یاد دارم توی عمرم با سه دختر روبرو شدم که در نگاه اول برای من زیبایی خیره کننده ای داشتند یکی دختر لاغرندامی بود با لباس شنای مشکی که حدود سال 1936 توی ساحل جونز مدتی هرچه ور رفته بود نتوانسته بود چتر نارنجی رنگ آفتابیش را نزل کند. دومی دختری بود که در 1939 روی عرشه کشتی تفریحی دریای کارائیب فندکش را به طرف یک خوک دریایی پرتاب کرد و سومی همین دختر یعنی مریاتسون بود. دختر که به رئیس لبخند میزد پرسید خیلی دیر کردم؟ مثل اینکه خواسته باشد بپرسد من زشتم؟ رئیس گفت نه و اندکی با خشونت به کمانچیهای نزدیک صندلی خود نگاهی انداخت و به ردیف اول اشاره کرد که جا باز کنند. مری میان من و پسری به اسم ادگار نمی‌دانم چی که دوست جانجانی امویش قاچاقچی مشروب بود گرفت نشست. ما هرچه چه جا توی دنیا بود به او دادیم. اتوبوس با تکانی عجیب و غریب و آماتوروار به حرکت درآمد. هیچ کدام از کمانچی‌ها جیک نزدند. به طرف پارکینگ همیشگی که میرفتیم مری هادسون روی سندلیش به جلو خم شد و با ابواتا به زیاد، قطارهایی را که از دست داده بود و قطاری را که از دست نداده بود، شهر داد. او از داگلاستان لانگ آیلند آمده بود. رئیس خیلی عصبانی بود و نه فقط نتوانست درباره خودش داده سخن بدهد. بلکه آنقدر هم گوشش به حرفهای دختر نبود یادم میآید یک بار دسته دنده در آمد و توی دستش ماند وقتی از اتوبوس پیاده شدیم مری هنوز از ما دل نمی‌کند من یقین دارم که وقتی به زمین بیسبار رسیدیم توی قیافه تک تک کومونچی‌ها این نگاه خوانده میشد که بعضی دختران نمیدانند چه وقت باید زحمت را کم کنند و از آنجا که همه چیز باید دست به دست هم بدهد وقتی من و یکی از کمانچیا شیر یا خط کردیم تا ببینیم کدام تیم باید اول زمین انتخاب کند مریادسون مشتاقانه گفت که دلش برای بازی یک ذره شده است. جواب این حرف برای ما از روز هم روشنتر بود. ما کمانچیا که قبلا سرسری به جاهای زنانش نگاهی انداخته بودیم حالا داشتیم بربر بر نگاه میکردیم. او هم جواب ما را با لبخند داد. و از تا حدودی ناراحت کننده بود آن وقت رئیس که قبلا پاچگی خودش را نشان داده بود، ورس و محکم پا پیش گذاشت. میری هاتسون را به کناری کشید تا حرفایش به گوش ماکمانچی ها نرسد و ظاهرا به آرامی و معقولانه بناکر صحبت کند. دست آخر میری هاتسون حرفش را قطع کرد و با صدایی که برای ها کاملا واضح بود گفت: اما من می من هم میخوام بازی کنم. رئیس با اشاره سر گفت که نه و حرفایش را از سر گرفت. به وسط زمین که خیس آب و پر از چاله چوله بود اشاره کرد. چوگان قانونی بیسبال را دست گرفت و نشان داد که چقدر سنگین است. مری هادسون گفت: "عیبی نداره. این همه راهو کوبیدم اومدم نیویورک برم پیش پزشک و اینجور کارا و میخوام بازی کنم." رئیس باز با اشاره سر گفت که نه، اما دنبالش را نگرفت. بعد سلانه سلانه به طرف دکهای بازی که قهرمانان و مبارزان یعنی دو تیم کمانچی منتظر بودند آمد و به من نگاه کرد من سر دسته مبارزان بودم اسم بازیکن وسط مراکب بیمار و بستری بود به زبان آورد و پیشنهاد کرد که مریهادسون به او او کند. من گفتم که بازیکن و لازم ندارم رئیس به من گفت چه مرگت شده که میگویی بازیکن وسط لازم ندارم من خوشکم زد بار اولی بود که میشنیدم رئیس بد و بیرا میگوید از این گذشته حس میکردم مری دارد به من لبخند میزند برای اینکه کاری کرده باشم سنگی برداشتم و به طرف یک درخت پرتاب کردم ما اول رفتیم زیر دو در دور اول توپی به وسط زمین زده نشد من گاهی از جای خودم در دکه اول نگاهی به پشت سر میانداختم هر بار که نگاهی می کردم میری با چهره خندان برایم دستکان می داد. دستکش توبگیر دستش بود. جای توپگیر را با کل شقی انتخاب کرده بود. و دیدن او در آنجا لجه مرا در می آفرد. نفر نهم در صفحه مبارزان بود که باید توپ می زد. وقتی این ترتیب را به گوشش خواندم کمی اخم کرد و گفت خب پس به خودتون تکون بدین و واقعا هم به خودمان تکان دادیم. دور اول او میزد. پالتوی پوست فک خود را درآورد و همینطور دستکش را. تا شروع کند. و با پیراهن قهوهی سیرش به دکه اصلی نزدیک شد. وقتی چوگانی به دستش دادم، پرسید که چرا اینقدر سنگین است؟ رئیس که داور بود؟ جایش را در پشت توب انداز رها کرد و با نگرانی جلو آمد. به میری هاتسون گفت که سر چوگان را روی شانه راستش بگذارد. بریادسون گفت گذاشتم رئیس گفت که چوگان را محکم نگیرد مریادسون گفت نگرفتم رئیس گفت که چشمت به توپ باشد مریادسون گفت هست برین کنار ببینم و با اولین توپی که به طرفش پرتاب شد با قدرت تابی به تن خود داد و چنان محکم به آن زد که از بالای دست بازیکن گوشه چپ رد شد وقتی ابتدا شگفتی بعد ترس تو با احترام و سپس شور و شعف من فروکش کرد نگاهی به رئیس انداختم پشت سر توپنداز ایستاده بود و از شادی روی پایش بند نبود انگار قند توی دلش آب کرده بودند از دکه سوم مریهاتسون برایم دست داد در جوابش دست دادم حتی اگر میخواستم نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم مهارتش در توپ زدن به کنار چه خوب می از دکه سوم برای یه نفر دستکان بدهد بعد تا آخر بازی هر وقت ما بالای دومی آمدیم مریهاتسان چوگان را در دست می ظاهرا به دلیلی از دکه اول دل خوشی نداشت و آنجا بند نمی شد. دستکم سه بار دزدکی خودش را به دکه دوم رساند. زیر دو بودیم حالمان زار بود اما آنقدر شما را آورده بودیم که خرابکاری های دختر به جایی نمی خورد. خیال می کنم اگر با هر چیز دیگری بجز دستکش توپگیر سراغ توبهای هوایی میرفت، یک چیزی می‌شد اما حاضر نبود دستکش را از جانش دور کند می گفت ما هست یکی دو ماه هفته دو بار هر وقت با پزشک قرار داشت با کمانچیا به بیسبال بازی می‌کرد بعد از ظهر گاهی سر وقت به اتوبوس می‌رسید و گاهی دیر می‌کرد گاهی توی اتوبوس به وراجی می‌افتاد و گاهی فقط می‌گرفت می‌نشست و سیگارهای هربرت تاریتون خودش را که ته شوب پنبه داش میکشید. آدم کنار او توی اتوبوس از بوی عطری که به خودش زده بود مست میشد.